بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله علی سیدنا الله علیه و آله و الله و آله و الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه در حساد معامله مها با فیهار اشتراکنند افتداعا احتمال داریم سه چهار مسئله مطرح بشه یکی نحی در معاملات یکی مسئله اجتماع هنو نه یکی مسئله بی حرام چون مقامشه این قسمت مکاسبی که ما الان هستیم نوع چهاران که بهی الحرام که اصلا چیزی که شابه تحریم کرده اون بهی باطل بزن مال به اضافه هست که درمانه مکنی دارم مسئله که شیخ روله نیکم مسئله شروط که مرموم استادین ها قایش شدن که مسئله شروط تابع مسئله شروط مسئله شروط رو جواب دادیم که درست ممکنیم بحث داریم جفتیات اما به خاطر عظمت رشته ممکن است معتقد باشیم که به اصطلاح مجیب فساد ولو مطلقا شرط فاسد و مفسد مجموعه اما مسئله اجتماعه نه از کلی اگر مسئله, مسئله میشه تو محلی وفا برده احتمالا نظر بزرگان برای این بوده که اینجا ترکیبشون انزمانی اعتهادی نیست این شبه بارده که ما از کلی ممکن است بگیم که خود عقد حرامه چون اونی که منشه این بشه شده خود عقده اون وقت اول خوب الاغود شاملشی میشه چون خود عقل محرمه این که ما از کردیم کلمات مرحومی زر شیرازی هم بشه در اجتماع چون ایشون گفتیم این کلمه ای که به کار برده این به معنای شما اگر گفت لعجل انه ها مثلا این دیگه مشکل بیش باید اونم این لغن اونم نه لحظه اتهام من همیشه کردم برای دقت علمی هر وقت میخونجوی اشارال بکنید در بیان مورد اشعار رو توضیح بدید یعنی واضح معین این کلمه اتهام رو که میشونه آورده ارجاعش به واژه اشعار نهایه اما در حرز انطباق این اینا دیگه رو حاضر با اشعار این عنوان دیگه دیگه دیگه. و اما مسئله نحی در معاملات اونی که در اینجا تصور میشه مسئله لا تأکل و اکن بین بینکن به باطل این که در اینجا اکل مال به باطله چون در مقابل اینکه که به نفع او حکم بکنه نه میلیون تومن برای او کم میکنه. خانه ده میلیونی رو این 9 نه میلیون تو. این از مسادیقه مال به باطله البته این توضیحات استابه هم گذشت شکر دیگر میخواید که مرموم اصلا معتقلن بابای به اسام مقابله هست باید سببیت نیست اون هستن باباید سببیت یعنی به سبب باسه چون در یک آیه دیگه داده که الا تأکل و انوال کن بین کن باسه الا انتکل تجارتا انتراز چون تجارت انتراز سببه تسباب معنای سببیت از شکه این این چون اجمالاً بد نیست اما منافات نداره که با اهم از هر دو باشه هم سببیت هم مقابله اولاً ما در قرآن کنین دو مورد داریم یکی اینجاست و تدلوبه ها الالحکام که تفسیر درشه شده یکی هم در زید همین آیه که علام کندن یکی هم درزه همین آیه که علام کندن یکی هم این هم داریم هر دو مورد رو داریم ما مشکل نداره که با و خیلی و تودلوبه ها ادل احتمال داره به عنوان به استدام سبریت باشه احتمال مقابله باشه تودلوب. لام تودلوب یعنی به عبارت دیگر ممکن از با به معنی اهم از سبریت و مقابله باشه این توضیحش رو سابقا هرز کردیم یه درزو کترار نداره اولا در زبان فارسی خوب دقیق بکنید ما اون در زبان عربی به به کار میبریم در زبان فارسی حفش اینه که بعضش با باشه بعضش باشه. اصلا همین با یه استعانت بسم الله این باید به نظر من با نام خدا نه به نام خدا ما در زبان عربی در هر دو به کار میبریم در زبان فارسی بعضی جهاش دست بعضی یاژ باز این دو سال باز با هم دیگه تفریق نگذاریم که متاسفانه به نظر من تفریق نشده همه رو به فارسی به ترجمه کرده این <تصفح> کلمه و از شد که کلمه با که در کتاب‌های مثل موقعی معانی متعدد نهت شارده هست و معنا عبوده معنی اول رو با قول خود ایشان الساق است و که کوفیون یک رو غیره همین هم درسته به نظر ما همین صحیحه ذکر اون بسیر مدار ولن یکه وقت به معنی فرس مثلا تبعید ذکر گفته ذکر اون کوفیون معانی متعددی که برای با آمده اینها در حقیقت همینطور که در بعض از عبارات از باب مصداقه تعدیره نه اینکه مفهوم باشه و یا اون نقطه ای رو که ما چرارن و مرارن هرز کردیم خروف اصولا، وزد شدن برای انهای نسب و ارتباطات این انها هم توضیح افضاده می تکرار بکنم و اصولا معانی حروف اگر بخوایم فرقش شد با معانی اسمی با معانی اسمی مقابل خودش مثلا فی با ذرفیت الان با استعلا من با اقتلا اقتلا هم یک مفهوم این اسمی است وقتی چیزی مسلوخ به غیرشن شده اسمش اقتلا هست اخرم دیگه بخارا تو من صورت ابراهیم یعنی این قرارت قبل از سوره ابراهیم نبود بود این اسمش ابتداز. حالا من هم که ببین ابتداء خود لفظ ابتدا هم که ببین همین این مفاهیم یک یعنی مفاهیم به اصطلاح نصی هستند خود ظرفیت ظرفیت یک یعنی مفهوم نصی است اگر شی محتوی باشه بر دیگر دیگری به که از اشیاء اون شیده دیگر خارج از شیعه اول نباشه اون زرفیه مثلا شما مقدار از آب رو در کوزه بریدی آب ظرف است برای اون آب. کوزه ظرف است برای آبی که در اون هست نه آبی که خارجه این یعنی در زرفیه این نقطه مراعات شده که محتوی باشه و از اون خارج نباشه این رو اصطلاحا ما بیشونیم زرفیه حالا میخواد با فی بیان بکنید با ذرفی از. فقط فرقش اینه وقتی که که این خود مفهوم رو با دو تا عنوان نسی کلی در نظر میگیم دو طرف کلی کسی کنم ها ارز اما وقتی فی رو به کار میبرید مندکن در غیر به کار میبرید فرم شاید همین لذا معانی حرفیه ارز یک نوع معانی اندکاکی هستن احتمالاً بدیله حد احتمالشون نگو زنوا جلوی دیگران صحبتی بکنی که ما هم سال فسولند در آلمانی چیه در کشور فسول در اولین بار تبدیل آلی رو به کار می‌کنیم که معمولاً حرفی آلی است که کفایت از ایشون می‌دهد. از کدام بزرگ شود راحت کفایت؟ در اینکه مراد صاحب کفایت و در یک صاحب فسول از آلی چی؟ احتمال دو تا احتمال دلیل احتمالات بیشتر احتمالات متعددی داره. ما به ذهن خودمون به جای به معنا اندکاتی است که اصل اصل این تحقیق رو بالا به ریشه اصلیش رو مرحوم نجملای مهرزی در شرح کافی آورده تو اونجا سوالی بر خرده ارث گریم لذا ایشون ما او جدا معنای غیره نرسه این غیره اندکاتیه و لذا کبوث من به نفع اندکاتی هستند اندکاتی یعنی بیرین معنا اختصارو در نظر میگه در شلال سیر و خودش و شهر بسره یا سرطومن از کوفه یک افتداری اینجوری که یک طور دیگه ما معانی حرفی در طول زمان بعد از اصم جهر شده و به معانی حرفی چون معانی اندکاتی هستن یک هنر مهمشون اختصار کلامه یعنی این سرطون از بطره سیر هست نسبتش به متکلم هست نسبت فعیی چون خود این نسبت ما از یک نسبت اشتراحی داریم مثل قائد یک نسبت فعیی داریم فرق بین قاتل مثل قائمون با قام زیدون اینه در قامه ای ای ای اصناد فعییه این توضیح هاستی در زیاده بحث مشتر توضیح ها مقصده از که چه نکات فنی با هم دیگه اینا خردن اسناد فعلی با اسناد اشتقاقی پس دقیق بکنید یک خود سیر خود ثر مفهوم اسمی یکی متکلم اینم اسمیه یکی هم بحر است اینام اسمیه اون چیزی که شما دارین در خارج ایناست اینا همه اسمیه هم. خودتون هستین این عمل شما هست بحرن اما شما در سفرتون در از اینها یک رواقتی رو ایجاد کردین. اول از سیف رو به عنوان شهری خبر دادین این خودش یک اون رو به خودشون نسبت دادین، ایماندکشتم در خودشون. این سیفی که موندهک در خودتون بود، مرتبط شدیم با صحره. نحره ارتباطش هم به نحره ارتباط ابتداییه، دقت می‌کنین؟ اگر سفرتون در لذا اگر بخواید شما این کلام رو باز بکنی باید مثلا دسته ترت مطلب بینیسی لذا کنال هست کنی معانی حرفی حصولا علامت پیشرفت عقلانی اکجام است. مثل بقیه حروب مثل نیست نیمی که از تعبیراتی بود که من دارمان عرض میکردم تک از معانی اسمی علامت پیشرفت علمی اکجام است به اختراعات و استشافات و تکثر معانی حرفی علامت پیشانده اقلانی و قلصبی است. اون موشکافی دخلت ها و موشکافی کردن ها معانی حرفی به اصطورت تصور ما اصولا مترخیره میشه جوامعه بشری رو من سآلان گردم توی بعضی از جوامعه که بودستم معانی حرفیشون هرچی هر کمتر باشه رشد اقلانیشون هم کمتره چون اصلا تو بحثه لغت اشاره کردیم لغت داره این تفکر رو رشته اونها هم چند اینا چون معانی اندکاتی هستن این میاد به نحن اندکاتی یعنی میاد لا تأکلو اموالکم این کلمه بینکن که اضافه شد ببینید، این بینکن اینجا است لا جناح علیکم انتأکلو منبویوتکم بینکم نداره چی می و همین اونجا ناظر تصرفات شخصی ماست شما میتونید از خونه پسرتون از خونه پدرتون از خونه که کلیبش درستون رو بخوری اما تا کلمه بین آمد این یک اصطلاحه یعنی اینجا شکل میخواد متعرض بشه به نحوه تصرفات مالی در معاملات جالی بین مردم یک در معاملات مالی تصرفات مالیست فی نقصه یه در کلمه دی نکن من هم از که هم از نکاتی بیدن لغت حرب هست البته اده این اینو بینید زدن که لغت حرب فقر قانونی داره این نیست نه استلاحه مثلا یدنبیت استلاح لا یدنبیت مثلا تا آمین این یدنبیت مصادفه با مرادون با کلمه نقض خاصی ماست یدنبیت هرزوش مهم نگه نقضی دست به دست تظرمه نکنیم این رو ترجمه دو این بینکن یعنی در ما لا تأکل و بینکو. انوال کن بینکن این اموال در بین خودتون یعنی نقض و انتقال ها این اسطلاح این فقر قانونی نیست بعضی از مستشری و بعضی از خودما تصور کردن که لغت عربی یک فقر قانونی داره لازه تبدیلی البته در جوامعه عربی قانون نبوده این راست. گاه گاهی اگر مثلا در نسل جامعی مثل جامعه مثل مکه در مدینه به خاطر وجود یهود به جای قانون اون عنوان کتاب رو به کار موند. الیزا خیلی با عظمت اونها اهل کتاب هستند. یعنی تورات و فرض مثلا میشنا که به عنوان مکمل توراتی مصنای تورات بود. میشنا رو به اساس المصنای المصنای تورات بود و تلمود که شرح میشنا بود، اینها رو به اصلاح معیار علمیات دینسر که شامل عقاید و پس از اون و مسائلی مثل فکر و بود اما در مکه شون مشتکین بودن مسیحیان ها خیلی کم بودن خود مسیحیت هم یه با قانونی داره تورات هم متعارف نبود خود احل مکه قانون نداشتن قانون ها در اون زمان بیشتر قانون های غیرمدرون بود یعنی وجود حاکم و رئیس عشیره اون خودش قانون بود به خلاف حال مثلا ارام قبل از اسلام به 2000 سال پیش 2000 سال تو ایران قانون بود باز قبل از ایران متن قانونی پیدا شده تو 4000 سال قدیمه این سیار سی سال به متن قانونی خیلی ناقص در یمن بوده. اون باز حدود هزار سال قبل این تعابیر قانونی در بعض ترهنگ ها وجود داشت همون در خصوص مثلا جغرافیاس العرب یک مشکل قانونی داشتن بازاردین بحث بشن و لذا بند سر این بود که اینا یک تعابیری اینا سیال میکنن این تعابیر بار قانونی نداره لذا مشکلات داره نه اینطور نیست این تعابیر بار قانونی داشته یک مقداری ابهام داشت به خاطر که خود اون قانونی از اول ابحام داشت و لذا شیعه معتدش شد که با روی و بحلبه. یعنی باید این مسئله امامت میمون تا این حدود و سغور مواد قانونی کاملا واضح و روشن می یک اساس کار اینه این لا تأکن و اموالکم بینکم خود بینکم یعنی در معاملات در معاملات اجتماعی پس اکلمان گایی به عنوان پیدنسه حساب میشه گاهی اکلمان به لحاظ روابط اقتصادی داروسته تن این بینکم اشاره بینید لا تأکن و اموالکم اون اینجا به باطل که از بسیات نظرها هم همینا درسته یک نوع اعتدال میده این احساب به چه معنا یعنی رو راست میده بین عقل از یک طرف بین مردم از یک طرف بین روابط اقتصادی از یک طرف یعنی چی بطل به باطل یعنی باطل رو میاد مندرک در ذهن این مفاهیم نگاه میکنه این نگاه باطل در زمین این مفاینی خب بگاه اشتای به دو جور میشه رفتا یکی به اسباب قانونی مثلا چون کلمه بینکوم آمده یکی سلامی هست چون بینکوم که آمد خود دقیق کردی بینکوم که آمد اون رو اسباب حساب میکنه ممکن است به لحاظ طرف مقابل هم باشه چون نقطه نقطه بینکومه نقطه نقطه خود عقل انسان فی نسته اون که به اینکم آمد گاهی ممکنه که اون باطل دین نه باشه که اون رابطه باطله اون سبب باطله یه الفاظ شده گاهی میشه اون سبب باطل نیست اون طرف مقابل باطله اونم انصاب میگه فرمان میکنه با مرای یک عنوان انصاف، این عنوان صلاحیت انتباه بر هر دو طرف رو داره و نظام به نظر ما هیچ مشکل نداره که لا تأکر و انباره کن بینکن به باطل هم شامل اسباب باطل میشه هم شامل جایی که عوض باطله به اون عنوان آمش میشه شامل بشه و طبعا خب فتاقای اصحاب هم محصول تا یک زمانی که پتن این طور بود مثلا به انعزیت جایز نیست و یه حرام جایز نیست این توضیحاتش شما رو اعصربندی. ما الان روایت مسند واضحه و خیلی حدیث صحت العهود که بیع ندلا یجوز نداره. مثلا بیهونگی استاره. دا اما در فقه در مغنه شیخ مفید داری در نهایه شیخ طوسی دارید در کتب علامه دارید در موقعه شرایط دارید شیخ طوسی 50 سال عمره مرحوم علامه دایره شما چه فکر میکنید؟ ما متون اون یک چیزه، روایات همون. در تقیلی ها میبینیم اونطور نیست این شاید همون نقطهی چه من از کردن یعنی در یک ذهنیت این طور آمده که لا ترکل و انبالکون بینکون به این شمول داشته باشه تمام این موارد رو شامل باشی البته چون در وحث رشو همین خودشواره ما روی رشو وارد رو بارد شدید این که آیا آیه مبارکه به وحث رشو برمیگرده همه همه کلام هست چون قبول داریم فولیا سیمون اعمال ایتام از در وقتی که رشوه حالا اون بحثه بذاریم او بعد بحث دیگه بعد اما اگر قبول بکنیم که آیه مبارکه شامل قاضی بشه چون لازم و شدنو به ها الی الحکام و تضریح هم در اینجا مجزوم است به لانه عکس بر اون و این در قران هست هر دو درسه یعنی همین دو سه بگیم لا ترکولو هموالکن بینکن بالباطل ولا تو دیلو این لا سع کنو و تو این یعنی لا تو دیلو در خود قرآن هم دوید لا تخمون الله و و تخمونه امانات این لا تخمونه امانات اینه من کرار ارز کردم تو دقیق گوهی اوقات حتی در کیفیت استعمال یه لغت یک استعمالی در یک زمان جاری و سائقه بعدهای مقداری مثلا تعجبابره این خیال مثل این برمیگرده فقط به لغت من از به مفردات برمیگرده به حیعت هم برمیگرده ما شواهد اقامه کردیم که از زمان نزول قرآن چه مکه، چه مدینه برای ازداره دیگران ماده, ماده رو به باب مفاعله میبونن زار بود. در قرآن کریم تماما دارتو باب مفاعله آمد شزار زار به واده درسان بلای زار یک مورد از رده دروغن استعمال نشه هم در همون مدینه در زمان امام صادق علیه السلام بودی زار باب افعال گذاشته بودی که باب مفاعل باشه هم در دنیای عرب کسی باب مفاعل داره مگر اینکه شواهد باب مفاعل مفقود نیست زار جار زار ازر بجاری هیئت عوض میشه کیفیت استعمال هم عرض میشه که ان در جای دیگر پس ما اگر آیه مبارکی نازر درشت رو باشه میتونیم این فرمولی لا تأکل و اموال کن نکن بالباطل این شامل حدث صورت ما نحنفی میشه این بحث اصولی داره بحث انتباغی هم داره اما بحث انتباغش رو واضح بحث انتباغیش مبنیست برای این اینکه با ام باشه و به ذهن ما هم بله حرفی نیست با اهمیت با مشکل ناده به هم نحری که شد. و اما بحث اصولیش بحث معروضی داره در بحث نحیه در باب معاملات اگر نحیه به مسبب خود آیا که بر بطلان صدب هم می این یعنی نحیه اینجا خوده به اکلمال به باطه که مسبب از عقبه چون ایشون عقدی بسته جنس ده میلیونی رو به یک میلیون دازه خود احض درست یا نه نه میلیون رو در مقابل باسه خورده. یعنی 9 میلیون رو طرف گرفته به ازای این که به نخوه حکم میکنه این توضیحاتی در محل خود بعضی بخصان درادت نمی در محل خودش توضیحاتش حرز کرده خوب در قدر فرمه نفیه مسبب یا حسن اگر یکی یا دو ساکرش درادت بر قساط نمی اما اگر برگرده به اثر کلی چرا میگه دازه بر پساط میکنه؟ مثلا در باب مسعه، این باب مثال خب عقد مسعه سریعه ولی اون نحقه واجب نیست میراس هم توش نداره این یک ای ایست که چون متاسفانه در کتاب تاریخ آمده که معمون خب نسبتاً وقیه خلافاردنی عباسی یعنی عقل خوشی یه بحثی بین معمون و یقیق نه اکساً قاضی در اون رجوع به یه یا به این تمثب میکنه میگه در قرآن کمی دو تا بیشتر من داری که ازواز اون مامل را ایمان خون. یا برده ای انسان باشه یا زوجه انسان باشه را که برده که نیست که خود شیعه قبول دانه هر کسی که گفته ماشه درسته میشه پس باید زوجه باشه اگر زوجه باشه زوجه ارس میبره. خود ایمان باید ماشه ارس میبره پس زوج نیست پس نه برده نه زوجه. اون وقت میشه داخل درس سوم در مبارکه مملکه قاره را که قوالای که عمل آزون این کسایی ای که سعی کنه اینجا آدون ای این یعنی از قانون برخلاف قانون گناهکار می معنی آزون فؤلاء هم العادون گفت که فرشت ان چه گز استفاده بشه حالا ببین خوبی استفاده در نفی مصئ نشینه و صو خدا رحمت به مرحوم یک که مکینش از ازاننده ماشین که ایشون میگفت می میگفت خیلی آدم درخوندی بود اون اونم هم همین دقیقه زشت برام باشه گفت کی نازو جات نه نکیا نی این داخل در اومد گفت خب بهشون جواب میگه آسونه اینجا تکسی خورده نفی ل یه اثر معناش این که هر دو باسه بره سوال میگه در درس یا سوال خب جونجی تام خصوصی این اثر برداشش رو تخصیص کنیم. تقصیر کامو جاییه که اگر این اثر بار نشود خوب دقت بکنید بار نشود، یک اثر معناش این نیست، اون عجیب و خود شما خودشونو اذیت واقعیم یا رو ذهنی کاویارگیر است نه هرگز، هم ایرت نیست. ایرت. اولم تقصیر کنم، اولم دی. تازه می‌دونیم. تو می‌توانی تقصیر کنیم. اینقدر بحث علمی نداره که. حالا ما آگاه فراشتنی خیلی نکته مهمی برایت می‌شیه. که مطقه نه عرض درسته میشه یک دفعه یک اثر خاص برداشته میشه دو تا اثر برداشته این اونا مهلا چی از این وقته اما یک دفعه کل اثر برداشته میشه حالا مثلا از عمر نهارو شده که گفته متعبن کانتا علا عهدرسی روستم روستم ای این حدیث بخاری نیارده کانتا علا عظیر مسئول الله بعد داره که اگر کسی پیش من اغورده که مطقه کرده جلد جلدش میکنم فرص این کلامو رو پیغمبر فرمیده باشه کسی محطه کرد من اون رو شلاخ میزنم این معنی شساده داره، این دو سا با هم فرمیده اگر پیغمبر فرمزه. من با مثال از ما ببینید نه امانه بگه عقل فاسده گفت شلاخش میزن تازیانش میزن اگر گفت تازیانه میزنم ارخ یعنی چی؟ یعنی عقل من نحقیق نشده <تصفيق> <تصفيق> اما اگر گفتیم نفقه نیست نیست این معناش نیست زبکه نیست نفی اثر یا دو اثر تلازم با نفی عقل نداره و چون در اینجا آمده لا تأکل و اموال کن بینکن بل باطه مخصوصا اگر عقل و کنایه از مطلق تصرف یعنی اگر سبب یا مقابل باطلی بود تصرفات شما در این انواق جایز می سنید لا تأکنید این به نظر ما به نحن ملازمه قانونی تلازم داره با بسلان سبب هست خود این آیه مبارکه از از سر تو برسی اصول بحث, بحث هست نه یا از سبب یا از مسببه در اینجا که نه از مسبب بشه به ذهن ما نهی از مسبب به این معنا که خود اون کل آثار رو چون اون امالکم دینکم الان توضیح ها دیشتونها روشن شد این کلمه دینکم رو اوبردیم این در روابط اقتصادی نه که یک مال رو خودتون مخواید مصرف بکنیم تو روابط اقتصادی که اوبردیم در مقابل باطل شما اکل نکنید، تطرق نکنید. خب این معنی شدید در روابطه اقتصادی این رابطه پیدا نشد. این معنی شدید که غیردی شد. وقتی نازل به روابط اقتصادی، بینکن، این کلمه بینکن، کنایت از, از روابط اقتصادی. مثل اون، جنا هرده کن، ترکلون، بیوز کن، بیوز کن، آباکن، آباکن نید، این با اون فرق میکنه. اونجا کلمه بینکم نداره اما اینجا کلمه بینکم داره وجود کلمه بینکم چون ناظره به روابط اقتصادی وقتی میاد میگه اصل درست نیست باطل نمیشه، شما ممنونی، جلو شما گرفته میشه این معنیش این در حقیقت اینکه اون رابطه اجتماعی رو قبول نکرده یعنی در مقابل باطل نقل و انتقال انجام نگرد نادر انتقال که در مقابل باطل میشه، پوذیری که شما در مقابل شد، که شما در مقابل باطل میگی شما نمیتونید هر چیه نفر دوست تا سوسو گند سو بزنه شما به در نمی تونه، خب این اصلا درست نیست. این بدله پول به ازای اون حیوان اون درست نیست. این اصل به باطله، در مقابل باطله. حالا این باطل و انساق نهع یعنی ما باید این باطل رو انساقش به ارث، اینجوری بشه. اون عرض رو هم با لحاظ دینکم نگاه بکنیم ما وقتی این مجموع رو رو به ذهن ما میاد که کاملا واضح داشت. از آیه مبارکه میشه دراحتی فهمید که هر نوع عقل به باطل که کشم مانه نفیه این داشته به صدر آیه و تودلو لیوب ما در اعتمارات کلم برهان رو استدلال رو کار می نه استدلال به خود باطل باطل میگه باطل است بعد اضافه کرده میگه این چیزی باطل بود مقابل قرار دادن درستش می کنه هم باطل نه چرا توزیدیم؟ خب میبین چون آخه این شبه هست بعضی احتمال دادم که مثلا به اطلاق از تجارت همتناس رو هم ما اصلا نهن نگوی همهر قراره کردیم نهن نگوی همهر سنن فیغمبره سنن فیغمبر در مقابل تجارت همتناس ممنونه چه؟ سلیمان از نیران سلیمان فختی فختیفی خب که اگر به این مجبول هم باشه تر قول نهان نبیان قرار معناشمینه درست شما میگید پیغمبر خدا قائم چرا راضی هستن من راضی هستن میگه شما راضی هم باشین چون طرف مقابل باطل فایده نداره چون غرضی فایده نداره اون اطلاق تجارت انتاج ورداشته میشه تجارت انتاج شامل باطل نمیشه چون این آیه نادر است به روابط اقتصادی هرچند بحثش کنیم براتون وقت میمونه و تدلوب ها حکام. اگر این تدلوب ها حکام رو تفسیر برای این صدر آیه گرفتی یعنی <تصفيق> ای که از مسادیق باطله اگر یک حکم رو مستقلی گرفتی که احتمال هم داره بلا تدلوب ها اصولا انسان نبارد با اموال خودش به حکام برسنه اگر مستقلی گرفتیم، این رو آیه هم میشه تنسل کرد اون وقت این به صدب بیشتر میخوره نه مصدب همون آیی اول آیی ما کامل بود دیگه ما کلی باید بحث نمیشیم یک فرقی رو هم در اینجا مرحوم صاحب جواهر مرحوم استاد یه فرقی رو مطرح کردن چون اصلا در بحث به شویگاهی بوده گاهی مثلا معامله که محاباتیه گاهی هم مثلا شعر یه قصیده در مردی نقل میبنم او حکم کن با قاضی برمون استاد ترمیدن که فلای و عددورش وقتن با قول روشید فضلا من کنی محبمن لدالک نه لکان لدالکه اعانتن هرزون کان حرامن منهاد جهه. اما اصد در مصبال فقا این یه فضیه مختلفهی من از بکنم برمون استاد بقاقل برمون استاد ج دارهن علدا ها مرون ایروانی استادیشون اصل شو هم در ت بود و این تاریشی داره من هر سر در درتر ساابق بهلم یهوارد میشن، تاریش این مسئله از اون جاهایی درتهاب می شروع شد که انسان چیزهای حلال رو و به که میدونه برای شرام ما میشه. ا انگور شده شد. شد کسی منه شراب درست میکن. این از هم زمان فوق ها شروع شد یعنی از ق دوم این مسئله. در چه حال و سنت آمد میگن مخلوقانه گیره مثلا بحث نکنه مثلا امام مثلا علی عز بمخضر انگو نمی‌وشه میگه بله اگه انگو نمی‌وشید این میخواد خراب بشه این از این تاریخ مسئله این بحث اعانه بر اسم در کلمات اهل سنت آمد البته خصوص انگو باشه که مثلا روایت داره البته ایراد انگو تو مثلا چون بده به کسی خودش آلاتو نشیلی موسیقی کنه مثلا نماز مثلا وای بر اونی که پروخته چوبه اما این شخص ازش در مسافت حرام میکنه این در فقه اسلامی به طور کدی آمد آمد به عنوان اعانه بر اس روشه شد؟ از قرن دوبوم از قرنهای اول به عنوان اعانه بر اس در میان فقه ما تا اونجایی که فقه ما رو بوادی چون این عنوان اعانه از اس نیامدهی نه؟ اما بردها مثل عقوم شیخ سوسین ها حقه هاشو آوردن اما رسمن با عنوان این عنوان در نهو آنت و از از زمان مثل محقی استانی این ها جورده شادی که کلمات علامن باشه. این اصطلاح در فقه ما با عنوان آنت و نهو از این دیر آفند چون در مصور روایی ما نیامده معونت و ظالمین و معین و ظلمی در روایت ما هست اما اعانه بر اسم نیست در قرآن هم تا آبون عدد اسم هست. اعانه نیست از زمان مثل محفظ کرکی و مرحومه شاید شکل این استداح که فقه ما آمد. این تاریخ ها از زمان محفظه ارده دیگی خدس الله چون ایشان انصافاً شروع کرد یک تربال و به یک پالایش کنگی در فقه انصافاً خیلی مرد محفظه شده حقیقتان ام داده نشد شروع کرد به بررسی کردن سریع هست سریع نیست کلمات هست نیست اجماع هست نیست قوائد درسته یعنی شروع کرد از, از ریشه دومقتی پالای شردن و تمسک به زباقه مثل منغولات اجماع اینها نکرد بیشن خیلی کار بزرگیه که تا یه مقداریش به صورت تونترش در کاران شایدش مرحوم صاحب این بحث کنجده از اون زمان بیشتر این تمسک بیانه بر اسم بود اما بیشتر بحث صغربی مطرح شد که آیا مثلا این تمس مثلا من دارم هر جمهیم با حج رفتم مثلا کمک میشه به مال به خاندان فرسون خبیص آلسود این آنه بر اسم هست نه این بحث صغربی بیشتر مطرح شد که مرموم محفظ از بیدی مثلا که سقیزم حالا من دقیقا نمیشم بگم از حدود زمان های سال این دسته ماست در قرن ششم در این مدت من تغییری ندیدم این اداره از سال یک نواختن میگه همه برای سفرام هست نه نه برایه شما شورش اینو که در آیه هر کدوم یک شما در خارج شدی کارا انجام میدی چون دینه آیه برگردی یک که خیلی که ظالمه میبینی خودت کمکی رو ظالمه بحث به قول خودش میگه که اداره بعد بچش میگه فاسد در نهایت آخری نو شرکت لذا ارز کنید اولین مناقشات ما مناقشات صغربی بوده نه کبربی که اینا اعانه بر اسمی سمه یار روشن شد جواهرین ها اعان بحث کبربی رو مطرح کردن اینشالله روشن بشه بست شما خیلی تصمیم گیری بکنیم بیدیم کجا هستی بیدیم بیدیم, بیدیم کجا هستی ساهم جواهر ها گفتنید که در قرآنه تعاونه بر اسمه نه اعانه تعامونه بر اسم خربش به آدمینه که در تعامون عرضیه یعنی پن نفر چیش نفر با همزید گناه انجام بدن یه گناه واحد رو مثلا پن نفر نفر نفر بکنشن این اسمش تعامونه این آنه در اسم طولیه و خربش هم با مقدمه حرام مقدمه حرام به فعل نفس آنه در اسم فعل غیره اصطلاح در بر اسم یعنی یه گناهی که میخواد محفظ بشه یک سلسله طولی داره یک کسی مختلف گناهی یک زبدال در این سلسله طولی هم آن در این سلسله طولی خود دقت بکنیم این اصلا چند امانه برکه مثلا یکی رفته چابو خریده چابو رو به من داده من چابو رو ببینم این آقا دارم اون رو آقا کشت نه فعل اون رو حرام میدونم که کشتن باشه چابو خریدم حالا ما آن چابو ساخته بعد این آقا فروخته اونو آقا به من داده من گرفتم به قاتل دادن یه بحث این بود که آیا ساختن شابو و فروش آن است یا من که آخر سلسله هستم میدم به قاتل این است باشن شد این همون بحثه که ما همه مقدسه عزویلی شروع کرده محفظ عزویلی بحثای صغربی به اسطلاع من میمیدونم باشن شداره که این سلسله که شما در نظر میگیریم کجا سلسل اعانه است؟ کجا سلسل آنه نیست تا ارتکاب همه حرام پس تا آغان عرضیه هل نفر در باهم خودت میکنن ایجا گناه میکنن اعانه طولیه لذا مثل صاحب جواهیم ها گفتن آقا اصلا ما دایی برای اعانه برای اسم نداریم اصلا اعانه برای اسم حرام نیست اگر سننی ایشان رو در نظر بگیریم که زاهدیشانم ملاحظه طبروی کرده البته مثال‌های طبروی رو آوردن بحث کردن که این آنه هست زیاد داریم این اما کوبروی نه این کوبروی که مرحوم استاد هم عقیده تعریفشون هم. بر همین است که بر اسم اما آانه بر اسم حرام نیست بهش اشاره بعد چه در روایت داریم معون ذوالمین معین ذوالمین ایشون قبول دارن مرحوم استاد که ما و ظالم حرام ظلم نه اعانت اسم این بگرستم هیچی اینجا تحبیه و استاذ نه هم لکان که اعانتن علی زول این نقطه توضیح بدم چون ایشون اعانتن علی اسم قبول نداره اعانتن علی زول این نقطه حبارتیشون رو دکت بفرمه و ما یه توضیح ها هم با مقدس اردوییست که یک مناقشات صغربی میشه که اما از آیه نمارکی حرمت آنه در درمید چون توزیر کنش یه تکرار نمی این مسئله که اگر انسان قصیده ای در وست قاضی گفت که برای او حکم به باطل بکنه این صاحب صدقه داشته و اشتری این صاحب عرفیت نداره معلوم نیست صدقه بله ممکن است انامین دیگری باشه. حالا اعانه بر اسم ظلم که ایشون به ذهن ما بر اسم هم همینطور یعنی اگر منشع به شکل قاضی بیاد خود رو رو بکنه من اعانه بر اسم می‌کردم، اون هم هست و اگر در قصیبیتی گفتن دروغ گفتن خب مثلا کذب هم هست دیگه این اینطور نیست که به به خاطر باشه خودش عنوان صدق رشه برش نمی حتی ممکن است این جور قصائد کاری بکنه از سادی شیار فشا باشه، این ظین بهگو ان تشیل فاهشه ها من چون میدونید که یه شع ممکن استا در جامعه رواج پیدا بکنه. گاهی ممکن است از مسدیر شیار فاهشه باشه. ممکن است راهاهنابین متعد دیگری حرام بشه به اون عنوان نه. اون جواهر جواه فر ایدار شبیه اینقدر از ما گذشت و در اصلش، بیشون به لحاظ مسئله به اطلاح وضعیش شدن اون که اگر کسی میخواد حقی رو مطلبی رو انجام بده ظالمون هست این ظالم ظلمن جلوشی گرفته نمیشه این مجبور یک رشعهی بده تا اون قانون رو به نفر خودش عرض بکنه همجا قانون هست لیکن قانون رو ظلم شده ایش رو پولی به بازی بده تا به حد خودش شده هسته لیکن قاضی رو هم از نظام قانونی خارج کنه در کلمات اصحار معامله برای منی که دافع هستم جایزه برای اون قاضی که ما به حسن قابل هستم بگیره جایز نیست این تبکیه که بین دو رشی راشی و مرتشی چون زواهر روی ها راشی و مرتشی این بحث هم این برگه از خطاب آمده به مناسبت زیلی مسئله حالا ما بعد بحثشو مطرح میکنم اول بگذاریم بحث کبردیشو مطرح بکنیم بحث کبردیشو مرحوم شیخ مطرح فرمده سومین، کل ما حکم حکمی به حرمت اخذر آخر و دو بعد از بیان این که حرامه در بسیار مهم میشینه که آیا واجه بر قاضی رد بکنه مالک نمیشه یا چون به هر حال من دادم دیگه تسریف کردم قاضی تسریف مجانی من میدونستم به شورت میدونستم حرام دادم به قاضی حالا که به قاضی دادم قاضی میتونم رد نکنه چون میگو خودش دادم و میدونستم حرام همه میدونستم شاره این راهی درسته میدونستم چون تسریف مجانی کرده طبق قاضی براش واجب نباشه رد بکنه یا اگر تلف شده بلده شده سردمان این بحث از رد میکنی بحث این و اون هر کی که در جوهره اون در ذیل اون بحث ان <تصفيق>